بیش از اینها آه آری بیش از اینها میتوان خاموش ماند میتوان ساعت طولانی با نگاهی چه نگاه مردگان ثابت خیر شد در دود یک سیگار خیره شد در شکل یک فنجان در گلی بیرنگ بر قالی در خطی موهون بر دیوان. میتوان با پنجه های پرده را یک سو کشید و دید در میان کوچه باران تند میبارد کودکی با باد بادک های رنگینش ایستاد زیر یک تاقی گاری ای میدان خالی را با شتابی پر هیاهو ترک میگوید میتوان بر جای باقی ماند در کنار پرده اما کور اما کرد میتوان فریاب زد با صدایی سخت کازب سخت بیگانه دوست میدارم میتوان بازی رکی تحقیر کرد هر معمنامی شگفتی را میتوان تنها به حل جدولی پرداخت میتوان تنها به کشف پاسخی بیهود دلخوش ساخت پاسخی بیهوده آری پنج یا ششکت میتوان چون صفر در تفریق و جمع و زرب حاصلی پیوسته یکسان داشت میتوان چشم تو را در پیله قهرش دکمه بیرنگ کفش كهنهای پنداشت میتوان چون آب در گودال خود خشگید میتوان زیبایی یک لحظه را با شرم مثل یک عکس سیاه موسک فوری در ته صندوق مخفی کرد میتوان در قاب خالی مانده یک روز نقش یک محکوم یا مسلوب یا مغلوب را آویخت میتوان با سورتکها لختی دیوار را پوشاند میتوان با نقشهایی پوچتر آمیخت میتوان همچون های کوکی بود با دو چشم شیشهای دنیای خود را دید میتوان در جعبه ماهود باتنی انباشت اسکا سالها در لابلای تور و پولک خوفت میتوان با حرف فشار حرزه دستی بیسبب فریاد کرد و گفت آه من بسیار خوشبختم